حبیب خدا می گوید ای طایفه زنها ای زنهای که امروز صاحب شوهر هستین خطابه بسوی زنهای صاحب شوهر هست ای زنهای که شوهر دارین فراموش نکنین که بزرگترین حق بالای شما حق شوهر است از همه بزرگترین حق بالای تو حق شوهر است حتی حق پدرت نیست حق مادرت نیست حق معلمت نیست حق داملوی محلت نیست بلکه حق شوهر بالای تو نیست از همه این حق ها دیده بالای تو اولین حق شوهر داره.